فصل سوم باور تجسم و باور به کسب میل گام دوم در جهت کسب سروت ایمان ایمان کیمیاگر ارشد ذهن است وقتی ایمان با ارتعاش فکر آمیخته شود ذهن نیم خداگاه فورا ارتعاش را برمی گذیند. آن را به ما به معنویش تفسیر می‌کند، و آن را به هوش بیکران منتقل میکند مثل عبادت یا دعا هی ایمان، عشق و آمیزش جنسی قویترین هیجانات اصلی مثبت هستند وقتی این سه با هم آمیخته شوند چنان حال و هوایی به فکری می دهند که این ارتاش فوراً به ذهن نیمه خداگاه می رسد. یعنی به جایی که به ما بهضای معنویش که تنها شکلیست که پاسخی از هوش بیکران القا می تبدیل می عشق و ایمان به جنبه روحی و روانی انسان مربوط می شوند. آمیزش جنسی صرفاً زیست شناختی است و فقط به امور جسمانی مربوط می‌شود. ترکیب یا آمیختگی این سه هیجان باعث می‌شود خط مستقیمی از ارتباط بین ذهن محدود و فکور انسان و هوش بیکران برقرار شود. نحوه پرورش ایمان. حالا جمله‌ای بیان می‌شود که شناخت بهتری از اهمیت اصل خود تلقینی در تبدیل میل به مابه‌ازای جسمی یا پولی به دست می‌آید. آن جمله این است ایمان یک وضعیت ذهنی است که میتواند به وسیله تایید یا بیان دستورات مکرر از طریق اصل خود به ذهن نیمه خداگاه القا شود یا آفریده شود به عنوان مثال توجه کنید که هدف شما از خواندن این کتاب چیست طبیعتا هدف شما این است که این توانایی را کسب کنید که کشش فکری غیر ملموس میل را به همتای جسمانیش یعنی پول تبدیل کنید. با پیروی از دسترالعمل که در فصلهای مربوط به خودتلقینی تلقینی می شود و با پیروی از ذهن نیمه خداگاه که به صورت خلاصه در فصل مربوط به خود تلقینی آمده است می توانید ذهن نیمه خداگاه را متقاعد کنید که شما باور دارید که آنچه را بخواهید به دست خواهید آورد و آن بر روی آن باوری عمل خواهد کرد و تاثیر خواهد گذاشت که ذهن نیمه خداگاهتان آن را به شکل ایمان به شما منتقل می کند و پس از آن باور برنامه مشخصی برای فراهم آوردن آنچه شما می خواهید ارائه می شود توصیف شیوه پرورش ایمانی که هنوز وجود ندارد العاده سخت است و مثل این است که رنگ قرمز را برای نابینایی توصیف کنید که هرگز رنگ ندیده و چیزی ندارد که آنچه شما برای او توصیف میکنید را با آن مقایسه کند. ایمان یک وضعیت ذهنی است که بعد از اینکه بر سیزده اصل مسلط شدید میتوانید آن را به دلخواه خود پرورش دهید. چون یک وضعیت ذهنی است که به طور اختیاری با کاربرد و استفاده از این اصول پرورش میابد. تکرار تایید دستورات به ذهن نیمه خداگاه تنها روش شناخته شده در پرورش اختیاری حیجان ایوان است. شاید معنای این سخن با استدلالی که در مورد علت آوردن افراد به جرم بیان می شود روشن تر شود. یک جرمشناس مشهور می وقتی انسانها برای نخستین بار با جرم تماس پیدا می کنند از آن متنفر و بیزار هستند. اگر مدتی در تماس با آن بمانند، به آن عادت می‌کنند و آن را تحمل می‌کنند. اگر برای مدت طولانی در تماس با آن بمانند، بالاخره آن را در آغوش می‌گیرند و تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. این مثل آن است که بگوییم هر میلی که مکررن به ذهن نیمه آگاه منتقل شود، نهایتا به وسیله ذهن نیمه آگاه پذیرفته می‌شود و از آن تاثیر می‌پذیرد. این ذهن آن میل را از عملی ترین راه به صورت فیزیکی درمی در این رابطه دوباره به این جمله توجه کنید. همه افکاری که هیجانی شده باشند یعنی با آنها احساس داده شده باشد و با ایمان آمیخته شوند فورا خود را به همتا یا معادل فیزیکی همون جسمانیشان تفسیر می کنند. یا بخش احساسی افکار عواملی هستند که سرزندگی، حیات و عمل به افکار می دهند. حیجانات ایمان، عشق و آمیزش جنسی وقتی با هر کشش فکری درآمیخته گردند منجر به عملی میشوند که از عملی که هر یک از این حیجانات میتوانند انجام دهند بیشتر است. نه تنها کشش‌های فکری که با ایمان درامیختند، بلکه آنهایی که با هر حیجان مثبت یا منفی دیگری هم درامیختند به ذهن نیمه خداگاه میرسند و بر آن تأثیر میگذارند. از این جمله خواهید فهمید که ذهن نیمه خداگاه همانطور که بر کشش های فکری دارای ماهیت مثبت یا سازنده تاثیر میگذارد کشش فکری با ماهیت منفی یا مخرب را نیز به صورت فیزیکی یا جسمانی در میآورد این علت همان پدیده است که میلیون ها نفر آن را تجربه می کنند و آن را بدبختی فلاکت یا بدشانسی می‌نامند. میلیون ها نفر هستند که خود را محکوم به فقر و شکست میدانند و علت آن را نیروی عجیب و غریبی میدانند که باور دارند بر آن کنترلی ندارند. به خاطر این باور غلطی که به وسیله ذهن نیمه خداگاه برگزیده می‌شود و به مدل فیزیکیش تبدیل می‌شود، آنها خالق بدبختی و فلاکت خودشان هستند. اکنون زمان مناسبی است که می توان دوباره گفت شما با انتقال دادن به ذهن نیمه خداگاهتان و باور به اینکه تحول واقعا روی خواهد داد از هر میلی که دوست دارید به مابعزای فیزیکی یا پولی برگردانده شود سود خواهید برد. باور یا ایمان شما اونسوری است که عمل ذهن نیمه خداگاهتان را تعیین خواهد کرد. همانطور که من ذهن نیمه خداگاه پسرم را گول زدم وقتی عمل را از طریق خود تلقینی به ذهن نیمه خداگاهتان می دهید، چیزی وجود ندارد که شما را از گول زدن ذهن نیمه خداگاهتان باز دارد. برای اینکه این هیله این را واقعگرایانه طرح کنید طوری این کار را بکنید که وقتی ذهن نیمه خداگاهتان را فرامیخواید انگار صاحب چیزی که می هستید. ذهن نیمه خداگاهتان به وسیله مستقیم ترین و عملی ترین وسیله موجود به مابعزای فیزیکیش تبدیل می‌شود. هر دستوری که با باور یا ایمان داده می شود انجام خواهد شد. روشن است که سخن به اندازه کافی گفته شده است تا نقطه شروعی تعیین شود که فرد با آزمایش و تجهیزات این توانایی را پیدا کند که ایمان را با هر دستوری که به ذهن نیمه خداگاه داده می شود ترکیب کند. کمال با تمرین حاصل خواهد شد. فقط با خواندن دستور حاصل نخواهد شد. اگر این سخن درست باشد که فرد با معاشرت با جرم مجرم می شود و این یک واقعیت معلوم است پس این سخن نیز به همان اندازه درست است که فرد وقتی از روی اختیار به ذهن نیمه خداگاه تلقیل می کند که او ایمان دارد ایمان خود را پرورش می ده. بالاخره ذهن ماهیت تأثیراتی را به خود می گیرد که بر آن غالب هستند این حقیقت را درک کنید تا بدانید چرا برایتان ضروری است که حیجانات مثبت مثل نیروهای قالب ذهنتان را تشویق و ترغیب و حیجانات منفی را تضعیف و حذف کنید. ذهنی که حیجانات مثبت بر آن قلبه کرده باشد، جایگاه مطلوبی برای حالت ذهنی موسوم به ایمان می شود. ذهنی که اینگونه گونه آن غلبه صورت گرفته باشد، به اختیار خود دستور را به ذهن نیمه خداگاه می که این ذهن آنها را خواهد پذیرفت و بر اساس آنها عمل خواهد کرد. ایمان یک حالت ذهنی است که می‌تواند به وسیله خود تلقینی القا شود. در همه اثار طرفداران مذهب به بشریت که تلاش می کرده به عقیده، مکتب یا مرامی ایمان داشته باشد، تذکر دادند، اما به مردم نگفتند که چطور ایمان داشته باشند. آنها تصریح نکردند که ایمان یک حالت ذهنی است و با خودتلغینی میتوان آن را الغا کرد. به زبان ساده تر، آنچه راجع به اصلی که با آن ایمان به وجود میآید و پرورش می را توصیف خواهیم کرد. به خودتان ایمان داشته باشید، به ذات لایتناهی ایمان داشته باشید. قبل از اینکه شروع کنیم باید به خودمان یادآوری کنیم که ایمان اکسیر جادانه است که حیات، قدرت و عمل به کشش فکری می دهد. ارزش دارد که جمله قبلی را دو بار سه بار و چهار بار بخوانید ارزش دارد آن را با صدای بلند بخوانید. ایمان نقطه شروع همه ثروت هاست. ایمان مبنای همه موجزات و رازهایی است که با قوانین علمی نمی توان آن را تحلیل کرد. ایمان تنها پاد زهر شکسته است. ایمان عنصر یا ماده شیمیایی است که وقتی با دعا ترکیب شود یک ارتباط مستقیم با هوش بیکران پیدا می‌کند. ایمان عنصری است که ارتعاش معمولی فکر را که به وسیله ذهن محدود انسان ایجاد می‌شود به ما به ازای معنوی تبدیل می‌کند. ایمان تنها عاملی است که نیروی کیهانی هوش بیکران از طریق آن می‌تواند به وسیله انسان مهار شود و مورد استفاده قرار گیرد. هر یک از جملات فوق را میتوان اثبات کرد. این اثبات ساده است و به راحتی می توان آن را نشان داد. در خود تلقینی نهفته است. بنابراین بیایید توجهمان را به موضوع خود تلقینی معطوف کنیم و ببینیم چیست و چه کار می تواند بکند. یک واقعیت مشخص است که فرد هر چه را چه درست چه غلط با خودش تکرار کند، بالاخره آن را باور خواهد کرد. اگر یک نفر دروغی را مکررن تکرار کند در پایان دروغ را به عنوان یک حقیقت خواهد پذیرفت علاوه بر این باور خواهد کرد که آن حقیقت است به واسطه افکار غالبی که هرکس اجازه می‌دهد وارد ذهنش شوند هر کسی آنی است که هست افکاری که فرد عمدن در ذهن خودش جای می دهد و آنها را با همدلی ترقیب می کند و یک یا چند هیجان را با آنها ترکیب می کند نیروهای ای را تشکیل می دهد که عمل و کردار آنها را هدایت و کنترل می کند. حالا یک واقعیت بسیار مهم پدیدار می شود. افکاری که با هر یک از حیجانات ترکیب می شوند، یک نیروی مغناطیسی ایجاد می کنند که از ارتعاشات هوا، افکار مشابه یا مرتبط را جذب می کند بنابراین فکری که با هیجان مغناطیسی شده باشد را می‌توان با یک بذر مقایسه کرد که در خاک حاصلخیز کاشته می‌شود جوانه میزند رشد می کند، خود را بارها و بارها تکثیر می کند تا اینکه بالاخره چیزی که در ابتدا یک بذر کوچک بود میلیون‌ها بذر از همان گونه شود هوا توده بزرگ کیهانی از نیروهای همیشگی ارتعاش است هم از ارتعاشات مخرب و هم از ارتعاشات سازنده تشکیل شده است همیشه حاوی ارتعاشات ترس، فقر، بیماری، شکست، بدبختی و ارتعاشات رفاه، بهروزی، سلامت، موفقیت و خوشبختی است از این انبار بزرگ هوا ذهن انسان دائما در حال جذب ارتعاشاتی است که با آنچه بر ذهن او غالب است هماهنگ است هر فکر، ایده، برنامه یا هدفی که فرد در ذهن خود دارد، انبوهی از بستگان خود را از ارتعاشات هوا جذب می کند و این بستگان را به نیروی خودش اضافه می کند و آنقدر بزرگ می شود که استاد غالب و برنگیزنده کسی می شود که در ذهنش سکنا گزیده است حالا بیایید به نقطه شروع برگردیم و ببینیم بذر اولیه یک ایده، برنامه یا هدف چطور در ذهن کاش نمی شود اطلاعات به راحتی منتقل می شوند. با تکرار فکر می توان هر ایده، برنامه یا هدف را در ذهن مستقر کرد. به همین خاطر است که از شما خواسته می شود هدف اصلیتان را رو روی کاغذ بنویسید. آن را به حافظه بسپارید و آن را هر روز به طوری که قابل شنیدن باشد تکرار کنید تا این ارتعاشات صدا به ذهن نیمه خداگاهتان برسند. به واسطه ارتعاشات فکری که از طریق محرک محیط روزانهمان مان و ثبت می‌کنیم آن چیزی هستیم که هستیم عزم خود را جذب کنید که تأثیرات هر محیط نامطلوب را دور بریزید و زندگی خودتان را بر اساس نظم بسازید با تهیه فهرست ذهنی از دارایی‌ها و بدی‌هایتان پی خواهید برد که بزرگترین نقطه ضعفتان فقدان اعتماد به نفس است به کمک اصل می میتوان بر این ضعف قلبه کرد و ترس را به جرأت تبدیل کرد با چینش ساده کشش های فکری مثبتی که بر روی کاغذ نوشته اید حفظ کرده اید و تکرار کرده اید میتوانید این اصل را به کار برید تا این کشش ها وسیله کارآمدی برای قریهه نیمه خداگاه ذهنتان شوند فرمول اعتماد به نفس نخست من میدانم توانایی دارم که به هدف قطعی در زندگی برسم. چون عمل مستمر و مداومی را در جهت دستیابی به آن از خودم می طلبم و حالا و همینجا قول می دهم چنین عملی را انجام دهم. دوم، میدانم که افکار غالب ذهنم نهایتا خود را در عمل بیرونی و فیزیکی باز تولید می کنند و به تدریج به واقعیت فیزیکی تبدیل می شوند. بنابراین، من افکارم را هر روز به مدت سی دقیقه بر روی این متمرکز می کنم که می خواهم چه کسی بشوم و به وسیله در ذهنم تصویر روشن و واضحی از آن کس خلق می کنم. سوم اصل خود تلقینی به من آموخته است که هر میلی که به طور مستمر در ذهنم داشته باشم نهایتاً از طریق دستیابی به هدفی که در پشت آن است نمود عملی پیدا خواهد کرد. بنابراین روزی ده دقیقه را به این اختصاص می می‌دهم که پرورش اعتماد به نفس را از خودم طلب کنم. چهارم، من هدف اصلیم در زندگی را به صورت واضح و مکتوب توصیف کردم و هرگز دست از تلاش بر نمی‌دارم تا اینکه بالاخره اعتماد به نفس لازم را برای دستیابی به هدفم پرورش دهم. پنجم، کاملا درک میکنم که هیچ ثروت یا موقعیتی نمیتواند زیاد دوام پیدا کند مگر اینکه بر اساس حقیقت و ادالت ساخته شود بنابراین من در هیچ تعاملی که به همهی کسانی که بر آنها تاثیر میگذارد سود نرساند وارد نخواهم شد من نیروهایی را که میخواهم از آنها استفاده کنم جذب میکنم و با دیگران همکاری میکنم و از این طریق موفق خواهم شد من با عشق ورزیدن به بشریت چیزهایی مثل نفرت، حسادت، خودخواهی و بدبینی را حذف می کنم چون میدانم یک نگرش منفی نسبت به دیگران هرگز نمیتواند برای من موفقیت بیاورد. من دیگران را وادار می کنم به من ایمان داشته باشند چون من به آنها و به خودم ایمان دارم. من نام خود را بر روی این فرمول ثبت خواهم کرد. آن را به ذهن خواهم سپرد و آن را با ایمان کامل به اینکه آن به تدریج بر افکار و اعمالم تأثیر خواهد گذاشت، روزی یک بار با صدای بلند تکرار خواهم کرد تا یک انسان متکی به خود و موفق شوم. پشت این فرمول یک قانون طبیعت وجود دارد که هیچکس تا به حال نتوانسته است آن را توضیح دهد. این قانون دانشمندان همه اعصار را گیج کرده است. روانشناسان این قانون را تلقینی نامیده اند و به همین نام بسنده کردند نامی که روی این قانون اند اهمیت زیادی ندارد آنچه مهم است این است که این قانون اگر به صورت سازنده به کار رود در جهت عظمت و موفقیت بشریت عمل می کند از طرف دیگر اگر به صورت مخرب استفاده شود به همان سرعت مخرب خواهد بود در این سخن می توان یک حقیقت مهم را یافت کسانی که شکست میخورند و زندگیشان با فقر بدبختی فلاکت و پریشانی و ناراحتی تمام می شود، علت آن است که اصل خود تلقینی را به غلط بهکار میبرند. علت آن شاید در این واقعیت باشد که همه ی کشش های فکری گرایش دارند خود را به صورت فیزیکی نشان دهند. ذهن نیمه خداگاه تمایزی بین کشش های فکری سازنده و مخرب قائل نمی شود. ذهن نیمه خداگاه یک آزمایشگاه شیمیایی است که همه کشش‌های کشش های فکری در آن با هم ترکیب می شوند و برای تبدیل به واقعیت فیزیکی آماده می شوند. این ذهن از طریق کشش های فکری ما و با اطلاعاتی که ما به خوردش می دهیم کار می کند. ذهن نیمه خداگاه با همان سرعتی که فکری را که به وسیله جرأت با ایمان سوق داده شده باشد محقق می کند، فکری که به وسیله ترس سوق داده شده باشد را نیز محقق می کند. سوابق پزشکی پر از خودکشی تلقینی است. انسان به همان اندازه که می با باشی به های دیگر خودکشی کند، می تواند با تلقین منفی نیز خودکشی کند. در یکی از شهرهای شمال مرکزی آمریکا مردی به نام جوزف گرانت که کارمند یک بانک بود، پول خیلی زیادی را بدون رضایت مدیران از بانک قرض گرفت و این پول را در قمار باخت. یک روز بعد از ظهر بازرس بانک آمد که حساب را چک کند. گرانت بانک را ترک کرد. اتاقی را در یک هتل محلی اجاره کرد و سه روز بعد وقتی او را پیدا کردند او در رخت خواب بود آه و ناله و گریه می کرد و با خود می گفت «خدای من این بدنامی مرا خواهد کشت من نمیتوانم این بیاب روی را تحمل کنم او پس از مدت کوتاهی فوت کرد. پزشکان این مورد را یک خودکشی روانی اعلام کردند. همانطور که الکتریسیته چرخهای سخت را میچرخاند و اگر به طور سازنده استفاده شود مفید است و اگر به طور غلط به کار گرفته شود جان آدم را میگیرد قانون خود تلقینی نیز بر حسب اینکه چه شناختی از آن داریم و چگونه آن را به کار میگیریم میتواند ما را به وادی آرامش و بهروزی و موفقیت هدایت کند یا به ورطه بدبختی شکست و محرک بکشاند اگر ذهنتان را با ترس تردید و ناباوری در تواناییتان به برقراری ارتباط با هوش بیکران و استفاده از نیروهای این پر پرکنید قانون خود خودتلقینی این روحیه ناباوری را خواهد گرفت و آن را به عنوان الگویی به کار می برد که ذهن نیمه خداگاهتان به وسیله این الگو آن را به صورت فیزیکی در آورد این سخن به همان اندازه صحیح است که دو زب در دو می شود چهار مثل بادی که یک کشتی را به سمت شرق و کشتی دیگر را به سمت غرب می برد. قانون خود تلقینی بسته به اینکه شما چطور بادمانهای فکرتان را تنظیم می کنید شما را بالا یا پایین خواهد آورد. قانون خود تلقینی که هر فردی با آن به قله های موفقیت حیرت انگیز می رسد در شعر زیر به خوبی توصیف شده است. اگر فکر می کنید شکست خورده اید پس شکست خورده اید. اگر فکر می کنید جعت نمی کنید پس جرأت نمی کنید اگر دوست دارید برنده شوید ولی فکر می کنید نمی توانید تقریبا قطعی است که برنده نمیشوید اگر فکر می کنید خواهید باخت خواهید باخت چون دنیا به ما آموخته است موفقیت با اراده شروع می شود. چیزی نیست جز یک حالت ذهنی اگر فکر می کنید از دیگران عقب میمانید پس میمانید باید بالا فکر کنید تا بالا بروید قبل از اینکه بتوانید هر جایزه ای ببرید باید از خودتان مطمئن باشید نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترها و یا سریترها تمام نمی شود بلکه دیر یا زود به نفع کسی تمام می شود که فکر می کند می تواند پیروز شود به کلماتی دقت کنید که روی آنها تاکید شده است تا به معنای ژرفی که شاعر در ذهن داشته پی ببرید در جایی از سرشتتان شاید در سلول مغزتان بذر موفقیت خوابیده است. بذری که اگر بیدار شود و به کار گرفته شود شما را به اوج خواهد برد. به جایی که هرگز امید نداشتید به آنجا برسید. همانطور که یک استاد موسیقی میتواند زیباترین آهنگ را از رشته های یک ویولون بیافریند شما هم می توانید نبوغی را بیدار کنید که در مغزتان خوابیده است و آن را وادار کنید که شما را به سمت هر هدفی سوق دهد که میخواهید به آن برسید. ابراهام لین در هر کاری که امتحان می کرد شکست میخورد تا اینکه به سن چهل سالگی رسید. او را کسی نمی شناخت تا اینکه تجربه بزرگی در زندگی پیدا کرد. نبوغی که در قلب و مغزش خفته بود را بیدار کرد، و واقعا یکی از بزرگترین مردان دنیا شد این تجربه با حیجان غم و عشق ترکیب شد این تجربه به واسطه خانم ان راتلج حاصل شد تنها زنی که آپراهام لینکول واقعا به او عشق ورزید این یک واقعیت شناخته شده است که حیجان عشق رابطه نزدیکی دارد با حالت ذهنی موسوم به ایمان علت آنین است که عشق خیلی نزدیک است به تبدیل کشش های فکری به معادل معنویشان من در طول کار تحقیقاتی که داشتم و زندگی و کار و دستاوردهای صدها انسان بسیار موفق را بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که تقریبا در همه آنها تأثیر یک زن وجود دارد هیجان عشق در قلب و مغز انسان یک میدان جاذبه مغناطیسی مطلوب ایجاد می‌کند که باعث می‌شود سیل ارتعاشات و امواج متعالی‌تر و بالاتر و عظیم‌تر که در فضا شناور هستند به حرکت آید. اگر دنبال مداره دال بر وجود قدرت ایمان هستید، دستاوردهای مردان و زنانی را بررسی کنید که آن را به کار گرفتند. بیایید ببینیم مرد بزرگی که همه تمدن او را میشناسند، یعنی مهاتما گاندی چگونه از قدرت ایمان استفاده می کند. یکی از شگفتنگیسترین نمونه های ایمان در دنیا که تمدن بشری به خود دیده است، این مرد است. گاندی قدرت بلغوهی بیش از همه یه هم خود دارد و این در حالی است که او هیچیک از ابزارهای امروزین قدرت یعنی پول، کشتی جنگی، سرباز و امکانات رفاهی را نداشت. گاندی پول نداشت، خانه نداشت، یک دست لباس از خودش نداشت، ولی قدرت داشت. او چطور به آن قدرت رسید؟ او به این خاطر به این قدرت رسید که اصل ایمان را درک کرد و توانست آن ایمان را در ذهن دویست میلیون نفر بکارد. گاندی با قدرت ایمان موفق شد. ایمانی که قوی ترین قدرت نظامی بر روی زمین هرگز نمی تواند با تجهیزات نظامی و سربازان خود به آن برسد. شاهکار عظیم او این بوده است که بر دویست میلیون ذهن تأثیر گذاشته تا آنها با هم در و متحد شوند و یک ذهن یگانه شوند. یگانه چنین روی دیگری به جز ایمان میتواند چنین کند؟ روزی خواهد آمد که کارکنان و کارفرمایان به قدرت ایمان پی خواهند برد. آن روز دارد ظاهر می شود. دنیا در طول دوره رکود اقتصادی فرصت خوبی دارد که ببیند فقدان ایمان چه بلایی بر سر کسب و کار خواهد آورد. بیشک تمدن تعداد کافی از افراد باهوش را پرورانده است که از این درس بزرگی که رکود اقتصادی به دنیا آموخت استفاده کنه. در طول این دوره رکود اقتصادی دنیا به وضوح دیده است که ترس گسترده باعث می شود صنعت و کسب و کار فلج شوند. از این تجربه رهبرانی در کسب و کار و صنعت سر برخواهند آورد که از الگویی که گاندی برای دنیا ارائه کرده است سود خواهند برد و همان تاکتیکهایی که گاندی در ساخت بزرگترین الگو در تاریخ جهان به کار برده است را در کسب و کار به کار میبرند. این رهبران ابتدا گمنام بودند که در کارخانه‌های فولاد، زغال سنگ، سازی و در شهرهای بزرگ و کوچک کار می‌کردند. کسب و کار قرار است اصلاحات ایجاد کند. حواستان باشد های گذشته که بر اساس ترکیبات اقتصادی فشار و ترس بودند، جای خود را به اصل بهتری به نام اصل ایمان و همکاری خواهند داد. کسانی که کار می‌کنند، چیزی بیش از دستمزد روزانه دریافت خواهند کرد. آنها مثل کسانی که سرمایه کسب و کار را فراهم می کنند، سود سهام را از کسب و کار دریافت خواهند کرد. اما ابتدا آنها باید بیشتر به کارفرمایانشان بدهند و این مشاجره و معامله را به زور و به هزینه دولت متوقف کنند. آنها باید این حق را پیدا کنند که سود سهام را دریافت کنند. آنچه از هر چیزی مهمتر است این است که آنها به وسیله رهبرانی هدایت می شوند که اصولی که به وسیله مهاتگانی اجرا شدهاند را درک و اجرا خواهند کرد. فقط از این طریق است که رهبران رویه همکاری کاملی که از بالاترین و پایدارترین شکل قدرت تشکیل می شود را از پیروانشان کسب می کنند. اثرش ماشین که در آن زندگی میکنیم و از آن ظاهر شده ایم روح را از انسانها گرفته است. رهبران آن طوری انسانها را به پیش بردند که گویی هایی از ماشینالات سرد و بی‌روح هستند آنها به این خاطر مجبور شدند چنین کنند که کارکنان با توجهی به همه دقدقه های دیگر معامله کرده بودند که بگیرند نه اینکه بدهند شعار آینده این خواهد بود خوشبختی و رضایتمندی بشر وقتی که این وضعیت ذهنی حاصل شده باشد تولید با اثر بخشی بیشتری از خود مراقبت خواهد کرد با اثر بخشی بیش از زمانی که انسان ایمان و منفعت را با کار ترکیب نمی کرد به خاطر نیاز به ایمان و همکاری در به انداختن چرخ صنعت و کسب و کار تحلیل رویدادی که شناخت عالی از روش پول درآوردن سنتداران و تاجران از طریق دادن قبل از تلاش برای گرفتن فراهم آورد هم جالب است و هم سودمند مثالی از رویدادی که تشریح کننده این وضعیت باشد به سال 1900 برمیگردد یعنی زمانی که شرکت فولاد ایالات متحده آمریکا داشت شکل می گرفت. همچنان که این گزارش را می خانید این داده های بنیادی را به یاد داشته باشید تا ببینید ایده ها چطور به پول های هنگفت تبدیل شدند. ابتدا ایده تاسیس شرکت عظیم فولاد ایالات متحده آمریکا به ذهن چارلز ام اسکوآپ رسید. دوم او ایمان را با ایدهش ترکیب کرد سوم، او برنامهی برای تبدیل ایده خود به واقعیت فیزیکی و مالی تدوین کرد چهارم، با سخنرانی مشهوری که در باشگاه دانشگاه ایراد کرد برنامه خود را عملی کرد پنجم، برنامه خود را با پشت کار، عملی و پیگیری کرد و با یک تصمیم جدی از آن حمایت نمود تا کار کاملا انجام شود اگر شما یکی از کسانی هستید که غالبا نمیداند ثروت هنگفت چطور جمع میشود، داستان شکلگیری شرکت فولاد ایالات متحده آمریکا شما را روشن خواهد کرد. اگر شک دارید که افراد بتوانند فکر کنند و ثروتمند شوند، این داستان شکتان را برطرف خواهد کرد چون کاربرد بسیاری از اصول 13 ای که در این کتاب توصیف شدند را به روشنی در این شرکت خواهید دید. خوب است توصیف پرآب و تاب قدرت ایدهایی که منجر به شکستگی این شرکت شد را از زبان جان لاول که در شرکت تلگرام نیویورک کار می کند بخوانیم. یک سخنرانی پس از شام در ازای یک میلیارد دلار. وقتی در شب دوازدهم سپتامبر سال 1900 میلادی حدود هشتاد نفر از اعیان در زیافت شامی به افتخار یک مرد جوان از در باشگاه دانشگاه در خیابان پنجم شرکت کردند، نمی دانستند که قرار است شاهد مهمترین بره از تاریخچه صنعت سنت آمریکا باشند. جی ادوارد سیمونز و چارلز استوارت سمیت که از مهمان نوازی سخابتمندانی چارلز ام اسکوپ در ملاقات از پترزبورگ سپاسگزار بودند شام را تدارک دیدند تا مرد سی سالی سنت فولاد را به جامعه بانکداران شرق معرفی کنند اما آنها انتظار نداشتند که او عرف را زیر پا بگذارد آنها به او هشدار دادند که این آدم های داده تحت تأثیر سخنرانی قرار نخواهند گرفت و اگر نمیخواهد استیلنان ها و هریمنها ها و واندربیلت ها را خسته کند بهتر است 20 دقیقه سخنرانی کند و به آن بسنده کند حتی جان مورگان که در سمت راست اسکواپ نشسته بود و نقش مقام سلطنتی را داشت میخواست سخنی بسیار کوتاه ایراد کند این مراسم از نظر مطبوعات و مردم چنان کم اهمیت بود که خبر آن به روزنامه‌های روز بعد راه پیدا نکرد دو میزبان و مهمانان برجستهشان هفت یا هشت پرس غذا خوردند گفتگوی زیادی شکل نگرفت و اگر گفتگوی هم شکل گرفت محدود بود. چند تن از بانکداران و دلالان که کارشان در بانکهای منونگاهلا رونق گرفته بود با اسکواب دیدار کردند. بقیه افراد زیاد او را نمیشناختند اما قبل از اینکه شب شود آنها و مورگان ثروتمند اختیار خود را از دست دادند و یک نوزاد یک میلیاردی به نام شرکت فولاد ایالات متحده آمریکا متولد شد. متاسفانه هیچ سندی از سخنرانی چارلی اسکواب در آن مراسم باقی نمانده است او بعدها در جلسه مشابه بعضی از بخشهای آن را برای بانکاران شیکاگو تکرار کرد و وقتی دولت برای فسق زمانت مالی شیکاگو همین روش را در پیش گرفت او از جایگاه شهود برداشت خود را از سخنرانی که مرگان را به فعالیت مالی شدید واداشت اعلام کرد با این حال احتمال دارد این سخنرانی ساده و بی بوده باشد. بوده که هرچند نکات دستوری در آن رایت نمی نمی‌شده ولی پر از لطیفه و نکته و زرافت است اما علاوه بر این نیرو و تأثیر کوبنده و شدیدی بر روی 5 میلیارد سرمایه‌ای که توسط مهمانان عرضه شد داشت بعد از اینکه این, این سخنرانی تمام شد حضار هنوز مسحور جذبه آن بودند هرچند چند اسکواب به مدت 90 دقیقه صحبت کرده بود ولی سخنرانی تأثیر بسیاری داشت معجزهی شخصیت اسکواب کار خودش را کرده بود ولی آنچه مهمتر و ماندگارتر بود برنامه‌ی گسترده و مشخصی بود که او برای توسعه‌ی شرکت فولاد تدوین کرده بود. خیلی خیلیهای دیگر سعی کرده بودند مورگان را علاقمند کنند که مثل جان دبلیو گیتس از الگوی ترکیب سرمایه در صنایع بیسکویت، سیم و حلقه، قند، لاستیک، روغن یا آدامس استفاده کنند. اما مورگان به آنها اعتماد نکرد. دلالهای نامدار بورس شیکاگو، یعنی بیل و جیم مکمور که یک صندوق سرمایه گذاری و مشارکتی و شرکت بیسکویت را تأمین مالی کرده بودند، نتوانستند او را به این کار مجبور کنند. یک وکیل مقدسنما به نام آلبرت اچگری آن را رونق دهد ولی آنقدر بزرگ نبود که تحصیل گذار باشد. تا زمانی که آوری و فصاحت اسکوآپ جی پی مورگان را به نقطه اوجی نبرده بود که از آنجا بتواند نتایج مشخص جسورانه ترین اقدام مالی را تجسم کند این پروژه رویای یک آدم احمق که دنبال پول بادآورده است تلقی می شد جازبه مالی که یک نسل پیش برای جذب هزاران شرکت کوچک و ناکارامد در داخل اعتلافات بزرگ و رقابت شکن شروع شد از طریق دزد دریایی حوزه کسب و کار که روحیه‌ای شاد دارد یعنی جان دبلیو گیتس در صنعت فولاد عملیاتی شد. گیتس قبلا شرکت سیم و فولاد آمریکا را از چند مؤسسه زنجیره‌ای تشکیل داده بود و به همراه مورگان شرکت فولاد فدرال را تأسیس کرده بود. شرکت‌های متروی ملی و پل آمریکایی دو شرکت دیگر مورگان بودند و برادران مور شرکت بیسکویت سازی را رها کردند و شرکت‌های تین پلیت استیلهوب، شیت استیل و شرکت فولاد ملی را تشکیل دادند اندرو کارنگی این اسکاتلندی پیر و عجیب نیز این را میدانست او در ارتفاعات با شکوه قصر اسکیبو استاد و تلاش های شرکت های مرگان را برای کاهش رونق کاریش با خنده و بعدها با بیزاری مینگریست. وقتی این تلاش ها خیلی جسورانه و گستاخانه شد کارنگی خشمگین شد و به تلافی رویاورد او تصمیم گرفت از هر ای که رقبایش دارند یکی تأسیس کند. او به سیم، حلقه یا ورق علاقه ای نداشت. در عوض راضی بود که به این شرکتها فولاد خام بفروشد و بگذارد آنها به هر شکلی که میخواهند کار کند. حالا که اسکواب جانشین او شد، او برنامه ریزی کرد که حال دشمنان خود را بگیرد. سخنرانی اسکواب در شب دوازدهم سپتامبر سال 1900 هرچند یک قول نبود بلکه بیشک می از آن استنباد کرد که شرکت بزرگ کارنگی را می توان زیر چتر مرگان آورد. او از آینده فولاد، سازماندهی مجدد برای کارایی، تخصصگرایی تعطیل کردن کارخانه های ناموفق و تمرکز تلاش بر روی اموال پر رونق اقتصاد در حمل و نقل سنگ مدن اقتصاد بخشهای اداری و هزینههای بالاسری و در اختیار گرفتن بازارهای خارجی سخن گفت علاوه بر این او از ماجراجویانی سخن گفت که دست به دوزدی های معمولی میزدند استنباط او این بود که اهداف آنها این بوده که انحصار درست کنند قیمت ها را بالا ببرند و سودهای کلانی را به عنوان امتیاز به خودشان بدهند. اسکوپ با تمام این سیستم را محکوم کرد. او به هزار گفت: کوتهبینی چنین سیاستی در این واقعیت نهفته است که در طری که در آن همه چیز شدیددن به توسعه نیاز دارد این سیاست بازار را محدود می کند. او میگفت با ارزان کردن هزینه فولاد بازاری ایجاد می شود که دائما در حال توسعه است. کاربرد بیشتری برای فولاد ایجاد خواهد شد و بخش زیادی از تجارت دنیا را میتوان تصرف کرد. هرچند اسکوآپ واقعا از این چیزها خبر نداشت ولی شاگرد تولید انبوه مدرن بود. به این ترتیب، زیافت شام در باشگاه دانشگاه به پایان رسید. مورگان به خانه رفت تا به پیشبینی های خوشبینانه اسکوآپ فکر کند. اسکوپ دوباره به پترزبورگ برگشت تا کار فولاد را برای شرکت وی اندرو کارنگی ادامه دهد. گری و بقیه به سراغ نوار اخبار بورس رفتند تا منتظر حرکت بعدی باشد زیاد طول نکشید که یک هفته بعد مورگان به استدلالی که اسکوآپ در پیش پای او گذاشته بود، پی برد. وقتی او به خود اطمینان داد که قرار نبود به هیچ وجه مشکل مالی پیش آید، دنبال اسکوآپ فرستاد و آن مرد را زده یافت. اسکواب خاطر نشان کرد اگر آقای کارنگی بفهمد که رئیس شرکتی که به او اعتماد کرده با امپراتور والستریت یعنی همان خیابانی که کارنگی ازم خود را جذب کرده بود که در آن پا نگذارد بازی می کند از این کار خوشش نخواهد آمد سپس جان دابلی گیتس که رابط بود گفت اگر اسکواب اتفاقا در هتل بلو در فیلادلفیا باشد جی پی مورگان نیز اتفاقا در آنجا خواهد بود وقتی اسکواب از راه رسید، مورگان در خانه خود در نیویورک بود و بیمار بود و وقتی پیرمرد مصرانه از او دعوت کرد، اسکواب به نیویورک رفت و دم در کتابخانه سرمایهدار حضور پیدا کرد. هیچ مورخ اقتصاددانی از این باور حمایت نکرده که از ابتدا تا انتهای نمایش اندرو کارنگی صحنه را چیده و زیافت شام برای اسکواب، سخنرانی مشهور، کنفرانس شب یکشنبه بین اسکواب و شاه ثروت به وسیله این اسکاتلندی زیرک چیده شدند. اما حقیقت واقعا عکس این است. وقتی از اسکواب خواسته شد که معامله را قطعی کند، حتی نمیدانست که ریس کوچلو یعنی اندرو کارنگی به پیشنهاد فروش مخصوصاً فروش گروهی از کسانی که اندرو آنها را واجد چیزی با قداست کمتر میدانست گوش خواهد کرد یا نه اما اسکواب شش ورقه مسی را با خود به داخل سالن کنفرانس برد آنها از نظر او نشان دهنده ارزش فیزیکی و ظرفیت بالقوه درآمدزایی هر شرکت فولادی بودند که او آن را ستاره مهمی در آسمان جدید فلزات می‌دانست چهار نفر در طول شب به این شکل ها فکر کردند. اول، رئیس مورگان بود که در باور خود به حق الهی پول پا بر جا بود. دوم، شریک اشرافی او رابرت بیکن بود. او یک محقق و مرد محترم بود. سومین نفر جان دبلیو گیت بود که مورگان او را یک قمار باز خواند و از آن به عنوان یک ابزار استفاده کرد. چهارمین نفر اسکواب بود که از همه بیشتر با فرایند تولید و فروش فولاد آشنایی داشت در طول این کنفرانس ارقامی که او ارائه داد هرگه زیر سوال نرفتند اگر او میگفت فلان شرکت فلان مقدار ارزش دارد پس آن مقدار ارزش داشت نه بیشتر. همچنین او اصرار داشت فقط شرکت هایی را که ثبت نام کرده در ترکیب به گنجاند. او شرکتی را تأسیس کرده بود که در آن حتی برای برآوردن حس تمکارانگی دوستانی که می‌خواستند بار شرکت خود را بر دوش مورگان بیاندازند، هیچ دوباره کاری وجود نداشت. بنابراین او چند شرکت بزرگتر را که شرکت‌های والروس و کارپنترز به آنها چشم تمه انداخته بودند، حذف کرد. وقتی صبح شد، مورگان سرپای ایستاد و کمرش را صاف کرد. فقط یک سوال باقی مانده بود. او پرسید: آیا فکر میکنید میتونید اندرو کارنگی را وادار کنید که دست به فروش بزند؟ اسکوپ گفت میتوانم مورگان گفت اگر بتوانید را وادار کنید که چیزی را بفروشد این کار را من به خواهم گرفت تا به حال که اوزا خوب پیشرفته اما آیا کارنگی چیزی را میفروشد؟ او چقدر مطالبه خواهد کرد؟ اسکوپ به حدود 320 میلیون دلار فکر میکرد چه دست را میپذیرد؟ سهام مشترک یا ترجیحی اوراق قرضه پول نقل هیچ کس نمی تواند یک یک میلیارد دلار را به صورت نقدی جمع کند در بوتزار یخزده مسیرهای ارتباطی خیابان اندرو با وستچستر بازی گلف در جریان بود اندرو که یک گرمکن پوشیده بود قوز کرده بود و چارلی مثل همیشه زیاد حرف میزد تا به او روحیه بدهد اما هیچ حرفی از کسب و کار نشد تا اینکه هر دو به کلبه کارنگی که در آن نزدیکی بود رفتند سپس اسکواب با همان روحیه اغناگری که 80 میلیونر را در باشگاه دانشگاه هیپنوتیزم کرده بود، شروع به حرف زدن با کارنگی کرد. اسکواب امیدهای پرزرگ و برقی در رابطه با بازنشستگی راحت و میلیونها دلار ناگفته که برای براوردن تمایلات اجتماعی پیرمرد حتی زیاد هم بود، در دل او پروراند. کارنگی دست از مقاومت کشید، عددی را روی یک تک کاغذ نوشت، آن را به اسکواب داد و گفت: بسیار خوب من این قدر می میفروشم. عددی که او روی کاغذ نوشته بود تقریبا 300 میلیون دلار بود و از حاصل جمع 220 میلیون دلاری که اسکوپ به عنوان عدد پایه ذکر کرده بود به اضافه 80 میلیون دلاری که نشان دهنده افزایش ارزش سرمایه در طول دو سال گذشته است به دست می آمد. بعد این اسکاتلندی بر روی آرشیو کشتی اطلس پیما با تاسف به مورگان گفت ای کاش 100 میلیون دلار بیشتر درخواست کرده بودم. مورگان با خنده گفت اگر میخواستی دریافت میکردی ققایی بپا شد یک گزارشگر بریتانیایی گزارش داد دنیای فولاد در خارج از کشف این اطلاف عظیم شکه شده است هاتلی رئیس دانشگاه ییل اعلام کرد اگر تراس ها منظم نشوند کشور در طول 25 سال آینده شاهد یک امپراتوری در واشنگتن خواهد بود. شیاد ارسگ سهام یعنی کین سهام جدید را با چنان قدرتی در معرض عموم قرار داد که همه ی آب اضافی که حدود 600 میلیون دلار برآورد میشد در یک چشم به هم زدن جذب شد. بنابراین کارنگی و همه پسران از گیتس گرفته تا گری به میلیونها ها دلار رسیدند و سندیکای مرگان 62 میلیون دلار به خاطر همه زحماتی که کشیده بود به دست آورد. اسکواب 38 ساله پاداش خود را دریافت کرد. او رئیس شرکت جدید شد و تا سال 1930 در این سمت باقی ماند. داستان جالبی که خواندید به این خاطر در این کتاب مطرح شد که توصیف کاملی است از روشی که میل با آن میتواند به معادل فیزیکیش تبدیل شود. فکر میکنم بعضی از خوانندگان این سخن را که یک میل صرف و غیر ملموس را میتوان به معادل فیزیکیش تبدیل کرد زیر سوال خواهند برد. شکی نیست که بعضی ها خواهند گفت شما نمیتوانید هیچ چیز را به یک چیز تبدیل کنید. پاسخ آن در داستان شرکت فولاد ایالت متحده ای آمریکاست. این سازمان بزرگ در ذهن یک نفر شکل گرفت. برنامه‌ای که برای کارخانه‌های فولاد ارائه شد، در ذهن همان فرد شکل گرفت. ایمان او، میل او، تخیل او و پشتکار او ترجیبات اصلی شرکت فولاد ایالات متحده آمریکا بودند. کارخانه‌های فولاد و تجهیزات مکانیکی که به وسیله شرکت خریداری شده بود، اتفاقاتی بودند که بعد از تحلیل دقیق این واقعیت را آشکار ساخت. که ارزش شده شده اموالی که در تملک شرکت هستند با معاملاتی که آنها را تحت کنترل یک مدیریت تقویت میکرد تا 600 میلیون دلار افزایش یافت. به عبارت دیگر ایده ی چارلز ام به اضافه ی ایمانی که او به ذهن جی پی مورگان و دیگران منتقل کرد سودی برابر با 600 میلیون دلار در داشت. این سود در قبال یک ایده سود اندکی نیست. اینکه بر سر بعضی از کسانی که سهم سود چند میلیون دلاری خود را با این معامله دریافت کردند چه آمد فعلا موضوع به ما است. ویژگی مهم این دستاورد شگفت‌انگیز آن است که این دستاورد شاهد بیچون و چرا و انکار است دال به صحت فلسفه ای که در این کتاب توصیف شد. چون این فلسفه پود کل معاملات است. علاوه بر این، پیشبینی پذیری این فلسفه به وسیله این واقعیت تثبیت شده است که شرکت فولاد ایالات متحده ای آمریکا رونق گرفت و یکی از ثروتمندترین و قویترین های آمریکاست که هزاران نفر را به کار گرفته است. کاربریهای جدید برای فولاد ارائه کرده و بازارهای جدید را دایر کرده است. بنابراین ثابت کرده است که سود 600 میلیون دلاری که ایده اسکوآپ تولید کرده بود دست آمده است ثروت به شکل فکر شروع می شود مقدار آن فقط به وسیله کسی محدود می شود که فکر در ذهن او به حرکت درآمده است ایمان محدودیت ها را برطرف می کند وقتی آماده اید که برای عبور از این راه هر ای که در معامله با زندگی لازم است را بپردازید به این نکته توجه کنید همچنین به یاد داشته باشید کسی که شرکت فولاد ایالات متحده ای آمریکا را تأسیس کرد در آن زمان هنوز عملا گمنام بود اندرو کارنگی کسی نبود جز یک با وفا تا اینکه ایده مشکورش به ذهنش خطور کرد ذهن هیچ محدودیتی ندارد جز محدودیت‌هایی که ما تصدیق میکنیم. هم فقر و هم ثروت فرزند فکر هستند